أعوذ من الشيطان الله لله رب العالمين الله على الله وآله وصحبه از شد در وقت خوشیت خبر طارفه یه رقایات هست که ادهی از قنعان دهی کردم و اون را نردن خوشیت خبر اولیس اصطار تشمالا طارفه رو بقص می کردن بیشتر از این دو جوابهای و اگه جوابهای حض کردن فرمیدن که این روز می کرده چون در وقت و هست که خیلی این جواب ما رو کنیم از و اما خود روایات و نکته به اصطلاح همی این روایات اولا اصلا که این مطلب که روایت باید دارای شواهد کتاب سنت باشه یا اگر مخالف با کتاب سنت باشه به حاله بده آیا حسولاً این مطلب که بشیننده یه مطلبی است که دارای اخر باشه یا نه یعنی به عبارت دیگر مطلب این است که آیا این مطلب که روایت با شواهدی از کتاب و سنت داشته باشه نتیجتاً طرح با اون روایاتی که حضرت خبیر آقایون یا عدله و مقداری بر حتی خبر خبره هست یا حتی خود کتاب به اصطلاحهی مبارک کتاب آیا اینها ها با همدیگه اختلاف دارن یا نه؟ چون من از کنم از دواره کلمات ایندهی این چود درمیان که ندیجه فرم نمی خیلی فرم نداره بعدم نقطه دیگری که در اینجا متعرض میشیم بعد از این مطلب و در خیلال این خبر سهر به روایت اون بیان نسبت و عوده مرکو مستان داریم این روایت و روایتی که توجیه خبره سهر رو اثبات میکنی به تحبیلیشان ولو از کنیدشون روایتی نداریم برگون که به خبره متعرض نسبت نمیشیم نه؟ در دماغیم که آیا در بباریاتی که محافظه کتاب سنت هست آیا احض شده عنوان خبره سه یا نه اون بخث دیگه هست اولا یک مجموعه این روایات رو تقریبا مرموم آی در این کتاب جامعه احادیس در این جده اول در همین چاپه که ما الان داریم و چاپ قدیمشون همینطور و این دسمان زمان خدای گرژدی رحمت الله علیه و صدام تندیم شده و چاپ شده در این بابی رو که به عنوان مایوهال رو بگید تا و روایات در این باب در باب تا عارض بود روایات رو بودی جسر باب دیگر در باب, باب پنج و از اخبار سباب این باب شیش و باب ماده ها در جبیدی تاروز و رقایات که یه مقدار از این رقایات هم در کتاب و اون هم در باب تاروزه و که اون رو در اول باب قضا برده مقدماتی باب قضا در اونجا متحدث شده این چاپ مرموم های رفتانی جدیش ده پس مرموم آیه برده برو از اصلا باب سره متعرض شدن به در روایاتی که به اصطلاح رای بین به این موضوع هستن باب مایه آلشویی تا آرز و که به اصطلاح در وقت به اصطلاح حالان متعارفی که در گروزه های ما هست محروف هست به معروف هست به کتاب باب تار روایات علاجیه به روایات علاجیه در اونجا متعرض شد اصلا که که اونه در اینجا قبل دیم که باز بحثش اولا شای اصلا این مطلب که موافقت کتاب شرطه شاهد شاهدان او شاهدان کتاب الله او سنت رسوله مثلا این منشه اثر هست یا چون از بعضی عبارات معلوم میشه که این منشه اثر چون مثلا تو کفایه تو بحث حجیت خبرگاه هست مثلا ندیجه چی میشه که حجیت خبر سره بلکه عباراتش هم حجیت خبر موسوقون به این نکر تو بحث تا که آمده ایشان گفته معافقه اتطاق و مخالفت آمنه جز مقبلنات و حجیت مرجع نیستن خب این به اصطراح با هم دیگه مشکل پیگانو کنه شازمشنشون تصور کرده بود خبر سقه با موافقت کتاب و سنت با اطارفه یکی نتیجه شد خب با نسبت رو بگن. بحث دو بود که برای نسبت بود در کلمات و استاد بود که ایشون اون روایاتی رو که به اصطلاح خبر اصطلاح هست از خرص مطلب میرفتن و گفتن روایاتی که موافقه با کتاب و سنت حجت الا اونی رو که علیه اصطلاح هسته بود و موافقه باشه با در حجت این هم تصولی بود که برای موصداد کرد خیلی این مطلب را اول ریشه رو پیدا بکنیم که آیا اصلا این ترمی مسئله موافقه کتاب و سنت بگرد که مسئله مخالفه آیا این اصلا داره اثر بوده در حدیث ما محصره یا نه تاثیر نداره به دفعه اون که سر به درمی کرده مثلا مطابقه با کتاب شونده این اول مطلب روشن بکنیم دوم بیان نسبت رو بگیم که آیا این مصدار رو مطلب درسته هم به اصطلاح ببینیم آلی روایاتی که محافظت کتاب سنت و مرجه عرامزه کورس دادم بشارکن رد و اونها چیه در بیاریم به نتیجه نهایی که این وقایات فهمیده میشه اصلا که در اینجه در کتاب رجال کشی در این کتابی که الان دست من هست در کتاب مرموم آقای برو در بجاره ایجا در تقریه جدهی که در این شاقه جدهی 312 و شماره حدیثی که زده شماره 23 مرگوم کشی اینطور داره حدیث سلی محمد ابن قولوی از خرد مرگوم کشی شوارد میشه شو میده که تا آمده هم بسه احتمال هم هست که قائل مرگوم عیاشی و داره اینشون هم در کرده وله حسین نه، حسن ابن بندار علقومی البته از این آقا حسین ابن حسن ابن بندار خیلی ما اطلاعات فرامان نداریم حال اشاره میکنم چون در کتب رجالی ما چندتر شرحال ایشان و خصوصیت ایشان توضیح داده شده از که ما یک بندار قومی داریم ایشون رو عبیدالله ابن امران جنابی از برک و برقی و قومی ایشان عبیدالله بن امران شدن اسمهای به عربی میخوره شدن در عصر عرب بوده اما ظاهرن از اشائر نیست ایشان ایشان معروف است به بندار عبیدالله بن امران و پسری داره به محمد محمد بن بندار اون روزه اجلا داماد برقی هم هست دختر برقی رو گرفته اون تیره خود محمد ملقف شد به ماجیبه بی. اون تیره ماجیبه هستند هستن اولین وی که یعنی همون شخص نه اینکه و به اون بیت این بی هم به صلاحی پسر یه هم داره بنامه علی بن محمد ماجیبه وی که استاد کلی نیست و نوهی داره بنامه محمد ابن علی ماجیبه که استاد شیخ صدوب اون یکی روی ماجی ریه. که از کنم ماجی احتمالاً احتمالا ماه بوده یا ماه گلوی ماه یعنی گل هم که برای تینه گلوی سرشت ماهی داره مثلا. اون روی هم که در لارت فارسی یا ضبطش هم مثلا مثل محمد ابن قولوی کم گل بوده گلوی به اصطادا اون ما... ماگلویه بوده به صورت ماژیلویه جیل... ما به اصطلاق بعد در زبان عربی به وی تلفظ کردن وی نیست تلفظ فارسیش مثل سیویه تلفاز حسیش اون طوره لیکن خبالا سیویه و میکنه پس این آقا وقتی اون ایشان پسری ای داره بندار غیر از محمد به نام حسن حسن به بندار الان ما معلومات ازشون نداریم ایشون یه حسن دو پسر داره یکه ای این حسین رو مرگوم کشی زیاد ازش نقر کرده حسین ابن چه مورد در کشی از این شخص نقر کرده و همه یه رو از سعده ابن عبدالله من ازشو بوده و یکی هم محمد ابن حسن این دو تقریبا کلینی محمد ابن حسن تا که و زاده ولیث بن ولید بينما هو في طاقه ومحمد حسن برادر همینه است برادر حسین حسین حسن, حسن, حسن او تقریبا از یک جهتی مشهورتره. اما در کتاب کشی این آقا بیشتر است داره به هر حال ما هر دو برادر بزرگوار نمی‌شویم اصولا ما یه عدد نسبتاً متناوبی رو از مشایخ قوم که ایلو ازشون خبر ندارم ببینم ثروه چون معلوم کلیلی متعفضه معلومی شده یا اینا تعریفات نداشتن دارشون خبر نداشته ما از مشاره تمنغرد و قرآنسان خیلی خبر نداریم حالا مال تمنغرد به خاطر اینکه که کتاب کتاب بوده شیخ توصیه مقدارش رو اما تو قوم ما نسبتا مجبور زیاد داریم نسبت به خودش مثل همین قسین ابن حضن رو گنده انسان احساس میکنه که شخصیتی بوده اما با معلومات ما خیلی کمه و هر موقع که کشی ازشون هرده معلومات خاصی ازشون نداره مثل ببینو که چی بوده با کی بوده چی بوده معلوماتی که ما همون نقلهایی که احتاب کشیه تصالاتاً یه مورد هم کشی از برادر ایشه محمد نحسنون بوندا دکنه هر جور از بردن نرمون کنه میگه به خطیفی کتابی به خطیفی مثلا حالا کتابیی آیشون تعدیف داشته نمیدونه نجاشی اصلاوازه فقط نجاشی اصلاوازه در خیلی معلومات ما کم میشه به هر ما متاسفانه معلومات ما از مشایخ قوم کمه و این محشر شده که حتی اصلاواز تصیف بشه تعریف بشه مشکلات درست بشه اینشانه اگر قرصه دیگه شد صحبت میکنیم و باید یک راه یعنی یکی را دید ما بونیه در منابع تاریخی موجودون راج به شناخت مشایخ بود مثلا مقداری که صدون و دیگران با اون طرف کار داشن یه مقدار بیشتر کار بشه احتیاج به کار جدید داریم مناسب یکی شوهام اینا حسین بن سعد بن بوندار همی که نمی‌شناسه ما راج به شناختشون در این منابع هم موجود نداریم. قالا حالا محمد بن اولبیدن شانخانه من خيار اصحاب کلمه خیار بگیم توصیه باشه از برحالشون دارد احساس ما همینه که حسین در حسن از شخصیت های علمی از مشاهد احساس ما داریم اما هم در حد که شواهد رو جمع بکنیم آلا حدثان سعدون عبدالله قومی که از اجلاس بلو بعضی شدوز در نقل داره به همونشون آلا حدثانی محمد بن ایسد بن قبید که سلیل و قلب است ابو جهتر محمد بن ایسا شرح رو یک جایی صحبت تو توصیف شده بحثی هم قومی ها داشتن که ظاهرا در وساقت خودش نباشه ان یونس بن عبد الرحمن، البته سعد بن عبدالله به عراق مسافرت کرده مشاهد ارام نرم محمد بن ایسا هم به قوم آمده شواهد نشون میده ظاهرا نمیدونیم این کدوم یکی بوده احتمال داره در مصادری که ایشون به قولونه ان یونس بن عبد البته عرض کردم در صحه کلی وب با یونس نبودن سابقا توضیحات داده شد ان شاء جای دیگه ان بعض اصحاب یه به خاطر به صحه این حدیث صحبت کردن چون آثاری داره سابقا حدیث فوق العاده مهمیه اگر ثابت بشه ظاهرش که سندش معتبره محمد بن بریه سر از مرحوم تکلیف زیاد نشه. بله. در بعض از موارد محمد بن قورهوی الجمال شطربان بوده نمیدونم اینه. هنوز نمی‌فهمم اشتباهش چی شده. یا ما خبر نداریم. اطلاع ما از مشایخ قم نیست. ایشون مثلا شطربان بوده و مثلا در قم کارش این بوده، نمیدونیم به هر حال اثر محمد قورهوی از مشایخ پسر ایشان هم که صحاب کاموری زیاده خیلیشون هم اوائل هم بشتن. قوم بوده بعد بغداد آمده و از مشایط بزرگ بغداد که استاد شهر مفیدند هست جعفر محمد نقولوه یعنی بسه خیلی توصیقات فراوانی داره یعنی توصیقات بزرگی داره به اطلاف خیلی ازشان تیلید پوغلاده یعنی از جعفر میکنه در حال زاره شانسیشی ن ایشان با خیلی طریقه به این پدر ایشان خیلی ما معلومات نداریم حتی فقط همین مقدار که اون از توی کتاب کشین زیاد داره و از سعد است الان تو زند میاد میداد بیر سعد نرکده باشه الان تو زند نمیاد البته جعفر پسرشون برادری هم داره که در همین کامل زیادش نرکو بکن بله حدیثان و محمد ابن ایسا عنی یونوس بن عبدالرحمن و و انا حاضر. از ذا بعض اصحابنا سأله وانا از اصلا بعض تصور کلم محمد می صلی لمیه علیه و علیه وسلم میگه این روایت تنها به عكسه شو که اصلا کاملا درک کرده میگه سأله و انا حاضر حالا روزی دیگه بحثی که میذنه صحبت پیشه سوال لبو یا ابا محمد ما حشدک فی چقدر در این حدیث قیود و پیدا و و شدت به خرج و اکثر انکاره که لما یروی ها اصحاب البته ما سالا قلیم گفیم با احتمالا چون در با بایون نسبت بودن ناظره به محیط قوم باشه اما روشن نیست حدیث ناظره به محیط قوم چون اگرم باشه اوائل محتب قومه یعنی مثلا سالهای دیویت که من عرض کردم محتب قوم شکریه حالا یا مثلا احادیثی کسانی در عوام بودند یا که در کوفه بودن و زیاد حدیث مروون کردم به احتمال بر احادیث می‌کردم بدون تنقیح و تصحیح علی ای حال از این عبارت خود دقت بکنید معلوم میشه که مرحوم یونس بن رحمان معروف به شدت در حدیث و انکار لمایروی اهل حدیث ای علی بحث ما برات من محل شاهده رو میخونیم رو. محل شاهده ما الان در این وحس اینجا محل شاهده معلوم میشه یونوس با داشتن این معنا بوده دقت کنیم مبنایی که با محافظه باقت تاقل سنت باشه مقداری از رو ترک میکرده و اشده و اکثر امکاره که ما یروی از خوابان بوده قطعه این نقطه چیه اینطور نیست که اگر ما وجيه خبر خبر قبول کردیم با جیت حدیثی که مطابقت با شواهد کتاب باشه نتیجش یکی باشه این نیست معلوم بشه این مسئله ما همیشه این مبنا که شواهد کتاب و سنت و با حدیث باشه این رو از مضمون یونس نادرمان نعم کنه معلوم که ایشان که این مبنا را داشته منتهی به این شده که مقدار زیادی از روایات و رو طرح ما که دکفل حدیث و اکثر این کاره که لما یرویه اصحاب اونا فمن لدی احمل و رد احادیث او درد بکنه سنه از بعضی مثلا کتب یک جبوسن موجیده خبر سهه یک جبوسن این روایتی میشار نسی تابنده این مخدمات رو باید این باید نمیز داده اینا چیار میکرن که اینا مشکل نداره این دو تا عنوان رو مشکل نداره از این عبارت معلوم میشه که اصلا یونوس متهم بوده که روایات رو رد میکنه فهمل دادی یحمل که علا رد الاحادیست و بعدم که توضیح میده نکته رو همین موافقت کتاب و سنت میدونه خوب دقت رو معلوم میشه مسئله موافقت با کتاب ماکان علیه شاهدان من کتاب الله و سنت و رسوله این منشه این بوده که ادهی از, از روایات رد بشه این حدیث درست کنمون سرست کنه الان فرد در کتاب کشی آمده و درست کنمون انفراض نکته نکات عجیبه داره علاقه برای ها چون سر ازش درسته فیلت مشکل خاصی نداره درست نشون میده که لده حدیث از همون عوائلی که مکتب وقتا به استعداد سلسون یونو دو در اعلام این شروع مکلن به تبیین حدیث واقعا با یک مشکلی رو بودن فقال یونس حدثني هشام بن حکم اولا این کلامی رو از امام صادق رحم میکنن یبور لا و علینا الا این مطلب یوده که امام صادق به هشام او تجدیدونه ما او شاهدلم احادیث نالمتقدمه احتمالاً مرا در امام صادق متقدم از از باقی باشه و از امام صادق سیدو شما اینها حدیث کمتر داشتند بعد هزار تا نکته این موقر تعب نسائی الله علیه الله در سفی کتاب اصحابه اولیه احادیث لامی حدس به حال این هم خیلی عجیبه یعنی این نکته مثلا امام فرموده باشن خب فرض که حالا اصحاب اون خدیث این کار کردن و نفر این یک بار که نبوده سالهای بعد می رفتن از امام سال میکردن بعد از امام ساله سال میکردن که وضع چیه این در کتاب ها آمده فتح الله ولا تقبل و علینا ما خالف قبل رب بنا تاالا و سنت نبینا در حال امام خان شاهدی بدهن این کتاب و سنن و خود امام قبولند بعد خیلی به عجیبه فانا اذا حدث و انه قال الله عزوجل نه قال رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم اینو چه کلامی که ایشون از امام صادر نکرده به واسطه ایشان علی یونس اما خودش وافیت به العراق وارد بحث عراق شدند در اینجا مرادش کوفه چون خود ایشان در ارام بودن و اقضا زدن جوافت در ارام هم تو به ها قطعتم اصحاب ابی جعبال علیه هنوز از اصحاب امام باقیر ادهی بودن که مرگه مثلا بودن و وجت تو اصحاب عبی عبدالله علیه السلام متوافری اما اصحاب امام صادق خیلی پرام بودن فسنی اتومن ها خیلی عجیب همه سما بوده و اخبتو کتوبه هم کتاب هاشون هم گرفتن یعنی هم به اصطلاح بند فیرستی و هم رجالی سمیعتو من هم جوانب رجالی اخبتو کتوبه هم جوانب فیرستی فعرق سامن بعدو علا عبدالحسن رضا علیه السلام ببینید همین اینجا پس سمیعتو من هم یا اصحابه علی شهر یا اصحابه علی الله. این هم نکته است که محل بحث ما هست که در بحث دروان گفتیم بهش اشاره میکنه. و اون این که خیلی بعیده که مثلا یونس از افرادی که فاسق و فاجر و یا مثلا و یا مثلا فاسق و مرتکب گناهان میشن یا حتی افرادی که مفهوره و نشناسه خیلی بعیده. این نکته این با دقیقه رو کنیم. این افرادی و رو کیونو سمع من هم چی به میاد که سقاط باشن به اینطور میاد خیلی بریده اگر این اینجور باشه اون این اینجور میشه که اون چه که کسی سرقه نموی کرده باز هم محاورد کتاب ها محاورد سنت درشن دقیقاً خلاق اون نتیجه ای که معلوم استاد گرفتن پیقت میکنی دقیقاً خلاق اینجا نداره که اون اصحابی که من از اونها گرفتم چی جوی بودن اما عادتا اینطوری که بازه عادتا این طوری سره باشن خیلی بریده دوشون فاسق و فاجه باز کذاب که قطعا نبوزن فاسق و فاجه باشه یا حتی مجبول رو حبیه فکر نمی کنم. از مجبولم نبشه باشه و اگر اینجور باشه دقیقا اینجور میشه خبر سره باز هم وقتی حجت مطالب با کتاب بره. که نوستیم اون این اون ایمان نتیجه یه نهاییم جاست. یعنی برخلاف همه روايات و بلوگرها که جمع بشه عدلیه جمع بشه و حدیث خطر سره بعض هم باید موافقانه با کتاب باشه. این میشه عکس اون نتیجه استاد. میدونیش ما بودن مطلب دوگاه نسبت سنجی میخوایم بکنیم. مشکل کار این عبارت یونسه. از این ابراری یونس ما چی در میاریم؟ ما استاد عکس این فرم فهمیدن اگر خبر متاظره کتاب سندن نواشه و می میشوارد الا انیتون راوی سقطن اینجوری فهمیدن اما اگر ما باشیم اون عبارت به اکس اونه که اگر سهه نقر کرد خبرش خجت دستادی که محافظه با کتاب سندن روشه این نکته اول دوم روشن شد که ما این خیلی روش دقت این قبل از اینکه ما بارده روایات بشیم ببینیم اصلا این تره مسئله موافقته کتاب و سنه از رضا, رضا چی بوده اصلا تره مسئله چی بوده رضا ما از این لغت اول از این راه وارد شدیم بعد فهرست ها من بعد و علا عبدالحسن رضا علیه السلام خیلی عجیب از این صحبت و بین الله همون راه رو که ما میبینیم به این شدتی که در حدیث دادیم معلوم میشه که واقعا نکاریم که ما میبینیم روز چون این که اون مستقیم از اصحاب علی جعفر و مستقیم از اصحاب علی عبدالله نمشته افتی خمال عزیز از عزیز این کار نمیده فهر از تو ها من برده علا عبدالحز رضا علیه السلام فهن کرمین ها احادیس کثیره خیلی بمیدونم ها چیکای کنیم اون تحسیفانه فقط در جال کشی آمده و شاید همی که از اصحابی که قومی ها چون مسلمی که قومی ها با یونوس خ فهن من ها احادیث کثیره انیقون من احادیث عبی عبدالله علیه السلام و قادلی امن ابل خطاب کلده برای عبی عبدالله علیه السلام لعن الله و ابل خطاب اصلا ابل خطاب مدقی باشیه بود در میانه شیه بود بردیگه انحراف هم اهلاعیی ازش نهارو شده هم انحراف عملی ازش نهارو شده هم نهارو شده, شده که مثلا خودش رو پیغمبر می‌دونه و صادق خدا می‌دونه الهی اعلی هم نرف شده مثلا اعتقاد به از اینها مثلا نظریه از اسماعیلیه حسن میگه اسماعیل هم با ابوالخطاب رفیق بوده فکر که چون نرف شدهستون که شلون که شلون بوده از طرف انا یه حال هم تایفی در از اینا همین میگن خب نه اهلی خکار محبه ما ترمه است بعد حضرت فرمان لحن الله اول خطاب و کذاره که اصحاب و اول خطاب یدوسون فی حاده الاحادیس یوم یومنا حادا این فی اولیسون روزن زیاده یدوسون حاده الاحادیس الا یومنا حادا امام رضا علیه السلام هنوز همون توی کوفه اصحاب و اول خطاب مشغول بعد از ظاهر خودشون ظاهر صلاحشون میدن میان خرابی در روایت درست میکنه البته این مسئله که یه و این در میان احرسانت هم خیلی زیاده اونا هم دارن ما داریم مثلا بعضیشون روشتن که کاندران بود بقالی، بقالی بودیم میاند که روایت جلیل لابله کتابه این قرار میداد اینم میداد به افراد داریم اونا هم دارن اینم اینطوره. امام میفرماید فیکوتو به اصحاب علی عبدالله علیه السلام یه دستون به این معنی به این معنی که می آمدن کتاب های پس مثلا کتاب علا رو می گرفتن و از سر زهر زهر سلام هم اون توش احادیسی جعل می کرن. بس پس ده هاشه کتابی در آخره بعد در علا که برمی گردن علا شون اعتماد به کس دیگه می داد یه دارد که برای احادیس دروب پس رو بیشیه کل تقبل و علینا خلاف آخر قرآ ف اننا حد به موافقت القرآن و موافقت سده. انصافه هم کلاه کیونو سر نظرت تا نعمل کرد این آخرش این نورانیت و اون دستش که یه عجیبه و ازت چقدر در ناراحتی بود در انجب این کار و ف ف اننا انتح دستنا حد حد به موافق قرآ و موافقت سنده. انا ان الله و ان رسولیهی نحدست ولا نقول قال فلان و فلان فیه پناقض کلامونا تا کلام ما متناقض بشه سر این که ایشون هم در باب به تعارض اینه من ارز کردم چند بار خدمت اگه یادون باشه لفظ تعارض ما تو باید نداره پناقض ببین تو نهجه بلاه راجب رسول الله میکنه بلاه پناقض داده تناقض داریم به سمت جهت تناغض کلام، ما. اما تعارض نداریم و که نه با خودش اساساً به معنای از بین بردن نیست، نه زنده هم ریخته. مثل یه خانه که توش لوازم مثلاً ساخته شده، گچ و آهن اینها اگه این رو بریزن میگن نقض و نقض اگر این در باشید شد اصطلاح جایدیه در روات به معنای اون خانه، چیز خانه اون آوار خانه آوار خانه رو نقض به کس روید مثل زب و مضبو آواری که از خانه به جانبونه نقض بشمید این یک تناوض و لذا میگن نقض یعنی شل کردن مثل نقض سلحب نه به معنای قطع تلحب این که ایسان مثلا تناب رو باز بکنه شل بشه که قابل کندن بشه راحت کنده بشه این رو میگن تا یه تناب از کلامونا اشاره به اینه یعنی بعضی از کلام ما بعضی دیگه رو نعبذ بکنه کلو واحده یه یعنی غضل آخر اگر این درست پس اون چیه اگر اون درسته پس این چیه بین بیمانه است ریشه یه تنابز اینه بعد حضرت فرمودن ان کلام آخرنا مثل و کلام اولنا و کلام اولنا مصدامون لکلام آخرنا و اضاعتا کن من یهدس کن بخلاف ذالک فردوها علی و انت اعلم به ما جئت به فا این ما قول مننا حقیقتن خبرم اسم مقدم ان است فا این ما اکل قول مننا حقیقتن و علیه نورون فمالا لا حقیقت لفت ولا نوره فداره قول شیطان این ساخت این زید سلام خیلی لدیفه ما و کلام آفیاد و کلام اول ما این نکته خیلی مهمی که در این زید روایت هست نشون میده که کلمات بیت منعه اول اخیر یکی بوده دقت کنیم و اگر تا هم پیدا شده این تا آرز اثباتیه نه ثبوتی یعنی این تا تو مقام نقله نه تو مقام واقع من چند هم سابقاً عرض کردن چون گاهی اونگاه تا آرز در مقام بود که خودو سنیا بگرم مثلا شافیه رایش اول این بود بروریشی نیشد امام میفرمون ما چون از اهل بی که بر هستیم کلام اول و آخر ما یکیه اگر تا آرزی میبینی، اگر تناقضی میبینید ما لقلیست که در ما شده ما خود ما نیست این نیست که مثلا امام صادقی نظری داشتن امام موسف جعفر نظریه دیگه نه کلام ما یکیه فعلا میکنن معافقه با قرآنی قرآن و سنت هم اشاره به وحیه حقیقت کلام ما یکیست اون چیزی این تناقض پیدا شده تناقض در مقام اثبات تارز اثباتی نه واقعا کلام های ما با هم مختلف این راجع به این مطلب از کردن بباید به حضر ظاهر سند شما تبره و خیلی توجیح بسیار خوبی است برای احادیث. و حالا بذات مطلب یک این که به مجرد اینکه خبر را بیش سره باشه این رو نمیتونیم به اصطلاح بله نسبت بدیم ظاهر قصه ظاهر قضایا اینطور است که این معنا یعنی موافقت با قرآن و سنت منشأ تأثیر در حدیث بوده و موجب بوده که ادهی احادیث رد بشن این خیلی نقطه مهمه، بس اینجا شیال نکنیم که این یک مقنی است که حالا فرصیم با مقنی خود جده خبر سر بسازم نکته دیگر که الان اینجا بردارد راست چنده نکته دیگری که از این عوالت روشن ما هستیم در بیاریم این بود که ظاهرا نسبتی این روایات اگر ما جده خبر فیران قبول کنیم امور خصوص مطلقه یعنی ظاهر این روایت این است که مجرد این که رایی سه باشه نمیشه قبول کرد مگر اینکه که موافقه با کتابه سنت میشه ظاهرش این طوره. و نسبت این، از کرده راجع به نسبت این دوتا سه احتمال هست یکی همونی که از استاذ کنگیم یکی احتمال اینکه که نصفات امو خسو باشه یکی هم این احتمالی که الان ما داریم که عکس احتمالا مستاده که ظاهری این عبارت اینطور باشه و اما امو خسو منوش هم رو بگیم اگر نفه مخصوص خسو بگیریم باید این طور بگیم باید روایتی که میگه خبرستق عدلهی که میگه خبرستق حجته این عامه میخواد مناقشه کتاب باشه نباشه روایاتی که میگه موافقه کتاب این عامه میخواد راوی سره باشه نباشه درک کنید اگر این جور باشه دو تایتر این جور گیره اگر روایاتی مطابق کتاب بود حجت راوی سره باشه یا نباشه روایتی که راوی سره بود حجت مطابق کتاب باشه نباشه اینجوری میگیم میشه عنصر ملموس اونجا رو میگیم اون بچی روی که استاد پرمیدن که شاهدی در روایات نداره بچی رو که الان عرض کردیم همه شاهدش همین روایتی و نصف اما اموم خصوص منورد در این کتاب دوسته تا روایت برشون میخونم من برای نمونهش یکیشه بله. برده در اینجا از کتاب مستدرک نقل کرده با عنوان اله ایاشی قبلش ونان اله فی تفسیره بعد گفته ان محمد ابن مسلم احتمال از تفسیر باشید اسم تفسیر رو نبازه چون بعد از قبلیش در تفسیره اینجا به این شماره که این کتاب هست شماره دوازده ان محمد بن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام ماجا که من روایت فی روایته منبر او خاشه اینجا دیگه تشریح شده سقه و غیر سقه ضعیف و غیر زعی سقه یعنی آده و غیر آده ما جا که فی روایت منبر و اوفاجه یوافق القرآن تخلده و ما جا که فی روایت منبر و اوفاجه یخالف القرآن تلا تخلده بسنی خود ده اگر این طاعت رو بگیریم نسبت اون خصوص مرور این دیگه تصدیل داره که اعتبار به مواقعات قرآنه میخواد بر باشه یا پاجر باشه این دو تا مطلب شد پس یکی این که بیان که حدیث بدن دن ضعیف در روایت محمد ریونوس معتول ظاهرش عکس اون نتیجه که استاد گرفتن این نقطه دوم که در شد من قبل اشارش ارز کردم مثلا در کتاب کافی ایشماریشون 16 محمد ابن یحیی، آن عبدالله ابن محمد، آن علي ابن حکم عبدالله ابن محمد احمد عبدالله ابن محمد عاشق علیه محمد توصیه نداره، اما که از که متأسفانه از کنم که متأسفانه که معلومات از نداریم انا علیه ابن من عبدالله ابن عبدالله و هده قال و هده دستانی حسین ابن عبدالعلا نمو ابن عبدالله المجلس قال سهل تو عبدالله عن اختلاف الحدیث این البته طرز تاروز شده از دقش ما تعبیر اختلاف الحدیث ف... من نسخو و من هم من لا تصفیح داره و قال ایلاورد علیکم حدیث و فرجت کم لهو من كتاب الله او قول رسول الله صلی الله علیه وآله وِاللہ فَالَّذِي كَاهَكُمْ بِهِ اوْلَا بِهِ رو برگیان علی و ابان ابن عثمان قال علیون علی حکم و حدت این حسین بن علی ابی الالاء ان هو این امام کتاب باشه یا مصوبه کتاب نباشه این دو تا مطلب شد تا اینجا که کدوم نسبت رو قبول بکنیم مطلب سوم گرمی هم در وقتی مالا عرض می‌کنم و اون مطلب سرون یه بود که خود ما اضافه کردیم ما از کردیم مگه یادتون باشه در اون تخصیم بندی گفتیم سه محور هست در وجهت سبر و اگرم خبر نباشه رو به مزموم بیاریم بودم سه محور بود نقطه ای که از اینجا اینه که موافره و موافقت به سنت توی اول، توی جز اولی مؤثره یا تو درمومی چون محافظه کتاب سنت گاهی اوقات جز معایی رو بود میشه پس این تو سلوه خرار بود جد گاهی اوقات میگیم نه خبر و ما خبر بود جدی نیست مضمونش مطابق با کتاب سنت یا نه. این از این نکتری که شون مرحوم اصطاب کسی دیگه متعرض نشونه این نکته هم ما اینجا متعرض میشیم که آیا از مجموعه روایات در موافقه کتاب و مخادفه کتاب اما را چون وقت تمام شد گراز شنوز نمو آیا بگیم این موافقه ها مخادفت مؤثره در هجیبیت خبره به آن در لفظی یا مؤثره در مضمون خبره با حکمی که نخواهیم به شرطا بزین که عرض کردیم مثلا شاید مثلا در مکتب قرداد این دوبامی شرایط بود مؤثر باشه در حکم خبره